خب بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدیمون در رابطه با استعاره تصریحی و مکنیه است ببینید استرا استعاره تصریحی و مکنیه اول قواعدش رو میخونید بعداً در ابصله تطبیق اینا رو توضیح میده دقت داشته باشید قاعده 13 با کتاب الاستعاره من المجاز لغوی میگه استعاره از مجاز لغوی هست. استعاره یا؟ ویژه تشبیه حذف یکی و دو طرفه است. استعاره تشبیه است که یکی از دو طرفش هست شده. ما قبلا در درس قبلی خوردیم که به مشابه و مشبه به دو طرف تشبیه گفته میشه. به مشابه و مشبهن به دو طرف تشبیه گفته بیشه حالا استعاره اونی است که یا تشبیه هیست که یکی از دو طرف شده باشه یا مشبه هست شده باشه یا مشبهن به و هی قسمان فعلاقه توها المشابه تو میگه علاقه در استعاره همیشه تشبیه مشابهت همیشه چیه؟ مشابهتی وهي قسمان وإن استعاره خدش بر چن نوعي؟ بر دون نوعي يك تصريحية استعارة تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به تصريحية أوليس ك مشبه به صراحة بيان شده خدش؟ بیان شده مکنیه استعاره مکنیه کدوم هست و ما محوظ ففیها المشبه به مکنیه اونی هست که مشبه به حذف هست و رومزه له بشین من لوازم. لوازمه و با یه چیزی از لوازمش اشاره شده یعنی یکی از لوازمش ذکر شده خود مشبه به چیه؟ هزفه و به شکل رمزی یکی از لوازم مشبه به هست؟ ذکر شده باش اشاره شده بایی که از لوازمش حالا بیایید در قسمت امسله الان الامثله یک قال الله تعالی الله متعال فربوده کتاب ان انزلناه ایلیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور کتابی است نازل گردانیدیم آن را به تو تا خارج کنی مردم را از تاریکی ها به نور دقت داشته باشید تا خارج کنی مردم را از تاریکی ها به نور اینجا در این مثال آیا منظور از تاریکی ها چه هست؟ منظور از تاریکی ها است. و منظور از نور چیه؟ هدایت و ایمان تا خارج کنید مردم را از تاریکی ها در واقع تا خارج کنید مردم را از گمراهی ها به فدایت خب خوب اینجا علاقه چه از علاقه همون مشابهتی همون چیه؟ که گمراهی شباهت به تاریکی داره و هدایت به شب... ش... نور در این... در این دو مثال اولی مشبه به شده خودش به شکل صراحت و اون چه است؟ ظلمات هست و نور اما مشبه که هدایت باشه که گمراهی باشه و هدایت ذکر نشده ببینید مثلا اگر میگفت تا خارج کنی مردم را از گمراهی هایی که مانند تاریکی ها هستند به سمت هدایتی که مانند نور هست رو بیشد تشمیح ولی اینجا یکی از دو طرف تشمیح چه شده بله مشبه به صراحتا چی شده؟ ذکر شده یعنی در واقع تاریکی مشبه ظلمات چیه؟ مشبه به مشبه به ذکر شده اما مشبه چی؟ حسب شده دور هم چورید مشبه ذکر شده اما هدایت که مشبه ذکر پس این شد استعاره این شد چی؟ استعاره و از کدوم نوعش؟ از نوع تصریحیه از نوع چیش؟ بخاطرین که خود مشبهن به صراحتا چی شده؟ ذکر شده حالا بریم روی مثال بعدی وقال المتنبی وقد قابله ممدوحه و آنقه متنبی در حالی که ممدوحشون رو ملاقات کرده و معانقه باش کرده بیگه فلم اره قبلی من مش البحر نحوه ندیده هم قبل از خودم کسی را که دریا به سمتش برود آه منظور از دریا کیه ممدوحشه دیگه خوب اینجا ممدوحش را حذف کرده و مشبه هلمه که به هره کارش کرده ذکرش کرده ولا لا رجلا قامت تعانقه الاسدو و ندیده هم شخصی را که شیر با او معانقه بکند بقل کشی بکنه. خوب ایجا است مشبهون بهه مشبهون ممدوحشه ذکر شده پس ایجا مشبهون بهه ذکر شده به توجیه به سالو بریم جلوتر بلد. یا معنیش کنم شما چی بجناب بولوی به توجیه بریم سیفودی پس ندیدم قبل از خودم کسی را که دریا به سمتش برود دریا منظورش ممدوحش ها و ندیدم شخصی را که شیر با او چه کار بکند بله با ادب بکنه و قالا فی مدح سیف الدوله متنبی در مده سیف میگه، اما ترا ظفرن خلوان سوى ظفرن تصافحت فيه بیض الهند واللیمم آیا ندی دی پیروزی شیرینی را جز پیروزیی که مصافحه کرده در آن شمشیر و گردن لمه این بوی رو میگه که تا اینجا بیاد لمه هم به تو بگم مفردش بله متوجه شدید لومبا. پس منظور از بیز الهند همون شمشیر هست و لمه جمع لمه هست و همون بوی هست که تا نرمی گوش بیاد که منظورش اینجا سره که منظورش اینجا چه سر سر بگه آیا ندیده ای پیروزی شیرینی جز پیروزی که مصافحه کرده است در آن شمشیر با سر شمشیر با چه باره خب در این مثال دقت داشته باشید دو تا مجاز وجود داره بیت سوفم چند تا چی وجود داره؟ مجازش چه هست؟ هست منظور از تصافحت برخورد. برخورده جان؟ بله قریده چه هست؟ قریده خدا به رو سره دیگه در بیت سوم میگه اما ترا حل و حلوان تصافحت فيه. بيض الهندي واللمب مصافحه كرده يجي بمعنى ايش است؟ بمباريه هست است بمعنى ايش است؟ خوب فصيجه تصافحت به معنی ملاقات هست برخورد هست چرا اومده اینا رو به جای طلاقت معنی مجاز شو به کار مرده تصافحت خاطر که بین این دوتا چی وجود داره؟ شباهت وجود داره همانطور که در مصافحه این دست با اون دست برخورد میکنه در برخورد بین شمشیر و سر هم چی وجود داشته؟ برخورد وجود داشته اینجا اومده چی رو ذکر کرده؟ تلاقتو حذف کرده؟ چی رو ذکر کرده؟ تصافحه رو ذکر کرده کعبور مشابه به به باشه که همون چی باشه مشابه به باشه بو توجیه شدیم قبول بیالا روش شرطت ای هم اینه که تصافحت مجاز هست چی استعاره هست از چی چی اگر مشابه به مشبه دیگه مشبهه به اینجا ببین شبیه کرده برخورده شمشیر و با سر شبیهش کرده با چی با شباهت مسافه که دست با دسته ولی اینجا مشبه ما که دست با دست باشه حسفه اما برخورده شمشیر با سر ذکر شده که با شبه به لذا این میشه استعاره از کدوم نویش تصریحیه خاطر که بای با شبه هل بهه چی شده ذکر شده نه تصافحهته مصافحهت کردن و ملاقات کردن علاقه بینشون شباهته از کجا بدونیم که اینجا تصافحهت به بانی تصافحهت نیست قرینه وجود داره بیز الهند و لبه اینا به چطوری ما هم دیگه مصافحه میکنن نمیتونن، ما به این قرینه به ما میگه که اینجا معنی اصلی نیست باله ولی از اون جایی که مشابه به، ببینید اینجا تشریح میشه مصافحه کردن برخور اونا به برخورد دیگه پس مشابهون به ذکر، مشابهون به چیه؟ حالا دقت داشته باشید بریم جلوتر. وقال الحجاج في احدا بله. و الحجاج في احدا خطبه حجاج در یکی از سخنرانیاش بیگه ولما لما اینی رؤوسا قد اینعت و قطافها و اینی لصاحبها سرهایی را میبینم که رسیده اند و وقت چیدنشان هست و من صاحب آنها هستم یعنی صاحب این چیدن یعنی من اونها رو میچیدم حجاج بوده شمشیرزن بوده خب بیایید اینجا در این مثال در این مثال بعدی موقعی حجاج میگه من سرهایی رو میبیدن که رسیده اند اینجا در واقع سر رو تشمیح به چی کرده؟ به میوه آخه میوه میرسه چی میرسه؟ ولی اینجا در این جای کار مشبه ذکره بشنبهول مه ذکر نیست که همون میوه هست ولی یکی از اون چیزایی که اشاره داره ذکر شده رسیدن آ ببینید خود میوه ذکر نیست که بشنبهول به ولی چیزی که اشاره به می میوه بیکرک که رسیدنه ذکر شده متوعدیست؟ این اعت؟ در اصل کلام اینطوری است که من سرهای رو مانند میوه ها بیمینم که چه؟ رسیده بشبهن بهو ذکر نکرده ولی یکی از لوازمشو چکار کرده؟ ذکر کرده که همون رسیده نه پس یکی از لوازم میوه همون رسیدن حال قطافها خوب پس اینجا رؤوسا استعاره هست ولی آیا تصریحیه هست یا مکنیه هست مکنیه هست چرا؟ چون مشمبه به ذکر نشد یکی از لوازمش چی شد؟ ذکر شد که اینو در قاعده خودی حالا بریم روی به بعدی در مثال بعدی متنبی بگه و قال المتنبی و لما قلت الابلو امتطینا الى ابن عبی سلیمان الخطوبا میگه وقتی که کم شد وجود شطور با سوار شدیم به سمت ابن عبی سلمان سوار چه شدیم؟ الخطوبا سوال مشکلات این هم از نوع استعاره مکنیه هست چرا؟ میگه امتتینا الخطوبه امتتینا ال چی آقا شما اینجا مشبه البهرو که سواری هست ذکر نشده بلکه یکی از لوازمش که امتتینا امتت هست ذكر شو مشبه مشابهون به؟ كي هبوا الرصواتي باش يذكر لا شو ذا؟ والابتداء يعني صار شو ذا؟ يكى أز اللازم مشابهون به تشو ذا؟ كابوا صار شو ذا؟ وآخر المجد عوفيا إذ عوفيت والكرم و ظالا عنك الى اعدائك الالم بی گ عافیت شده زمانی که تو چی شدی عافیت شدی خب مجد اوفیا دقیق داشته باشید مگه مجد چه هست که عافیت پیدا بکنه مجد اینم بزرگی آره دیگه ماجد بله اینجا ببینید مشبه البه که انسان باشه خست شده عافیتی که از صفات و لوازم چیه؟ مجد یا از انسانه ولی اینجا یکی از لوازم مشبه البه چی شده؟ اوفیه ذکر شده ولی خود مشبه البه ذکر نشده در واقع داره میگه که مجد بمانند توی ممدوح من است تو که خون بشی مجد همچیه بله میگه المجد اوفی اوفیتا والکرمو همچنین کرم و اتفه به اون ما قبلش به مجد وزال انکه الى عادای کالالم و درد از تو به دشمنانت رفته پس اینجا شما متوجه شدید که اگر مشبه به سراحتا ذکر بشه بهش بگن استعاره تسریحیه مانند سمه مثال اول مانند ظلمات و دور که مشبه به بودن مانند بحر و است که مشبه به بودن سراحتا ذکر شده بودن مانند مال تصافحت که خودش چی شده بود اما در امثله بعدی در سمی سال بعدی مشبه البه ذکر نشده ولی یکی از لوازمش ذکر شده پس در رؤوس مشبه مشبه البه دیست چون مشبه البه ذکر نشده این اعت که از لوازم مشبه البه که همون بیوه باشه ذکر شده در مسال بعدی امتتینا از لوازم مشبه البه امتتینا ذکر شده خود مشبه البه ذکر نشده و در مثال آخری مجد که مشبه ذکر شده اما مشبه البه ذکر نشده ولی از کلمه اوفیه ما میدونیم یکی از لوازم چی هست؟ مالحبو المشبه البه هست که ذکر نشده